اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم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 هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بنعم الله که بخشا جان دبو رحمت است آنچه در آسمان‌ها و زمین است، تسبیح گوی خداوند است و او قدرتمند و حکیم است. فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست. زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر کاری تواناست. او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او بر چیزی آگاه است. او است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد سپس به فرمان روایی بر مخلوقات پرداخت بدانید هرچه در زمین فرو می رود و هرچه از آن خارج می شود و هرچه از آسمان نازل می شود و هرچه به سوی آن بالا می رود همه را به خوبی می داند. او با شماست هر کجا که باشید و خداوند نسبت به عمل کردتان بیناست آسمان آسمان‌ها و زمین از آن اوست و همه امور به او باز می گردد شب و روز را از دل یکدیگر درمی‌آورد و او بر آنچه در سینه‌ها می‌گذرد آگاه است به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنکه شما را جانشین و نماینده در آن قرار داده انفاق کنید بدانید کسانی از شما که ایمان آوردند و انفاق کردند برایشان پاداشی بزرگ است از چه روز که شما به خدا ایمان نمی آورید؟ حالان که پیامبر همواره شما را دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید و اگر اهل ایمانی از شما پیمان گرفته است او است که بر بندش آیات روشنگر را نازل می کند تا شما را از تاریکی ها خارج و به سوی نور رهنمون کند زیرا خداوند نسبت به شما مهربان و با رحمت است از چه روز که شما در راه خدا انفاق نمی کنید حال که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و کسی چیزی با خود نمی برد بدانید کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند سپس جهاد کردند با کسانی که بعد از پیروزی انفاق می برابر نیستند آنها بلند مرتبه تر از کسانی هستند که بعد از پیروزی انفاق کردند و به جهاد رفتند هرچند خداوند به هر دو اینها وعده نیکو داده است بدانید که خداوند نسبت به عمل کردتان آگاه کیست که به خدا وام نیکو بدهد تا دو چندانش کند و پاداش ارجشمند از آن او باشد یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسع نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم بشراقم اليوم تحتها هو الفوز العظیم روزی مردان و زنان و اهل ایمان را خواهی دید که نور وجودشان پیشا پیش آنها و در سمت راستشان حرکت می کند در آن روز بشارتتان بهشت است. که نرها دران جاری است و جاودانه آن خواهید بود این همان پیروزی بزرگ است روزی که مردان و زنان منافق به اهل ایمان گویند نظری بر ما کنید تا فروغی از نور شما برگیرید گفته شود برگردید به دنیایتان و از آنجا نور التماس کنید دیواری بین آنها میکشند که دری دارد درون آن رحمت الهی است و بیرون آن عذاب و رنج آنها را نداده آیا ما با شما نبودیم؟ گویند آری بلی شما خود را در حلاکت افکندید و به انتظار نشستید و انباره در مورد حقایق در شک و تردید بودید آرزوهای واهی شما را فریفت تا اینکه فرمان خدا رسید و شیطان شما را در برابر خداوند مغرور کرد امروز بدل از مجازات هیچ فدیه از شما و اهل کفر قابل پذیرش نیست جایگاهتان آتش است آتش دوست و همنشین شماست و چه بد سرنوشتی است آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان قلبهایشان را برای یاد خدا و آن حقی که نازل شده خاشع کنند نباید همانند کسانی باشند که پیچ از این کتاب آسمانی عطایشان کردیم زیرا آنها چون زمانی گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسق شدند بدانید که خداوند زمین مرده را حیات و زندگی میبخشد. بخشند ما آیات نجات بخش را برایتان بیان کردیم امید آنکه که کنید این المصدقین والمصدقات و الله قرضا حسنا یضاخ لهم و اجر کریم خداوند به مردان و زنان صدقه دهنده، آنهایی که به خدا غرزالحسنه میدهند پاداش دوچندان عطا میکند علاوه بر آن، پاداش پرارزشی برایشان محیاست است. کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند، آنها اهل صداقتند و شهدا نیز نزد پروردگارشان میباشند و ثواب پاداشو نور خویشند و اما کسانی که کفر برزیدند و آیات نجات بخش ما را تکزیب کردند همشان اهل جهنم هند. بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی است. تجمل پرستی و مایه تفاخر بین شما و افزون طلبی در مال و اولاد است. مثل بارانی است که باعث محصول چود و کشاورزانش را به شگفتی در سپس خشک شود و آنطور که می‌بینی زرد گردد آنگاه تبدیل به خاشاک شود بدانید که در آخرت یا مجازات شدید است یا مغفرت و قشنودی خداوند و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به وسعت پهنای آسمان و زمین است از یک دیگر پیشی بگیرند که اینها برای کسانیست که به خدا و پیام برامش ایمان آوردن این فضل و کرم الهیست که بر هر کس سلام بداند عطا می کند. زیرا خداوند صاحب فضل بزرگی است هیچ مصیبتی در زمین و در مال و جانتان نخواهد رسید مگر پیش از آن که زمین را بیافرینی آن مصیبت در کتابی ثبت شده است بدانید که این کار بر خداوند سهل و آسان است لیکی لا تأسم على ما فاتكم ولا تفرحو بما آتاكم والله لا يحبو كل مختل فخور تا هیچگاه نسبت به چیزی که از دستتان رفته تأسف نخورید و نسبت به چیزی که به دستتان آمده خوشحال نگردید زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد کسانی که هم خودشان بخل می‌ورزند و هم مردم را وادار به بخل می‌کنند و نیز هر کس که از فرمان هم روی برمیگرداند بداند که خداوند بی‌نیاز و در خور ستایش است ما پیامبران من را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم عادلانه رفتار نماید و نیز آهن را که در آن نیروی شدیدی نگفته است و منافعی برای مردم دارد فرو فرستادیم تا خداوند مشخص نماید چه کسانی به نادیده او و پیامبرانش را یاری می کند بدانید که خداوند قدرتمند و پیروز است. ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و به فرزندانشان مقام نبوت و کتاب عطا کردیم ادهی از آنها هدایت یافتند و بسیاری کنهکار شدند آنگاه بعد از آنها پیامبران برانمان را فرستادیم و ایسابن مریم را در پی آنان روانه کردیم و به او انجیل عطا نمودیم و در دلهای کسانی که از او تباییت کردند رعفت و رحمت قرار دادیم. اما روحبانیتی که آنها از پیچ خود ابداع کردند ما بر آنها مقرر نکرده بودیم هرچند که در آن خوشنودی خدا را جستجو می‌کردند. اما حقش را به شایستگی ادا نکردند. نتیجه این که کسانی از آنها که به حقایق ایمان آورده بودند پاداش دادیم و بسیاری از آنها گنهکار آمدند. ای اهل ایمان حرمت خدا و را نگاه دارید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا شما را از رحمت بیکرانش دو دوبار پاداش دهد و برایتان نوری قرار دهد تا به واسطه آن راه برید و شما را بیامورزد که خدا آمرزنده و باگذشت است تا اهل کتاب بفهمند قادر به دست یابی به فضل الهی نیستند زیرا فضل و کرم به دست خداست و به هر کس صلاح بداند عطا می کند بدانید که خداوند صاحب فضلی بزرگ است وَأَنَّ الْفَضْلَ الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ من وَاللَّهُ والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم دوام بلند مرتبه بود. ازی کاری از, از مؤسسه پیامبر مهرو رحمت صلی الله عليه و آله و سلیم.